بسم الله بنامه خداونده به اندازه مهربان نهایت باره قاف و سوگند به قرآن مجید که تو پیامبری ولی ایشان از این دست شکفت شدن که به ایشان از میان خودشان بیمدهنده آمد کافران گفتند این چیزی عجیب است آیا چون بیمیریم و خاک شویم باز زنده می شویم؟ این بازگشتنیست دور از عقل؟ بگمون ما آنچه را زمین از وجود آنها کم می کند می دانیم و در نزد ما کتابیست که هر چیز در آن محفوظ است بلکه حقی را که با ایشان آمده بود دروغ وانمود کردن پس ایشان در امر حیرت آور گرشتار شدن آیا به سوی آسمان بالای سر خود نگاه نکردم آن را چیگونه بناه کردیم و مزین ساختیم و در آن هیچ کافی نیست و به زمین متوجه نشدم که آن را گسترش دادیم و بر آن کوههای شامخی قرار دادیم و در آن هر جوره روییدنیهای تر و تازه را رویانیدیم این تبصرۀ است و یادآوری برای هر بنده خدا جوی از آسمان آب پربرکتی را فرود آوردیم و با آن باغها و دانه درو شده رویانیدیم دیم با ساقه های بلند و با خوشه های انبو و تو در تو به حیث روزی برای بندگان و با وسیله این آب سرزمین خشکیده و پژمرده را زنده گردانی و بیرون شدن زندگی بعد از مرگ نیز این است پیش از ایشان قوم نوح، اصحاب رس، سمود، عاد، فرعون و برادران لوط پیامبرانشان را تکذیب کردند و نیز اصحاب ایکا و قوم تبع هر یکی ایشان پیامبرانشان را تکذیب کردند. سپس و عاده اعذاب در مورد آنها تحقق پذیرفت آیا ما در آفرینش اول عاجز مانده بودیم؟ بلکه ایشان از آفرینش نو در ترددند بیگمان ما انسان را آفریدیم و به وسوسه هایی که خودش به خاطر خود می آورد آگاهیم و ما با او از شارگ جان او نزدیکتریم به خاطر بیاور که دو فرشته فراگیرنده از راست و چپ نشستهاند انسان هیچ سخن را تلفظ نمی کند مگر اینکه نگهبانی برای سبت اعمال نزد او آمده است و تلخی جان کندن براستی فرارسی این چیزی بود که از آن کناره را می گرفتی و آنگاه در سور دمیده می شود این است روزی شدن وعده اعزاب هر کسی که می آید با او را ننده است. که او را به میدان می راند و نیز گواهیست. است به او گفته می شود حقا که تو از این غافل بودی اکنون از تو پرده غفلت تو را برداشتی و امروز چشم تو تیز بین است هم نشین او می گوید این است چیزی که نزد من آمده است به ایشان گفته می شود هر ناسفاس سرکش را به دوزخ اندازید هر مانی خیری متجاوزی و شکاکی را هر کس را که با خدای برحق معبود دیگری را شریک آورده پس او را به عذاب شدید اندازید امنیشین او میگوید گوید ما، من او را به سرکشی وا نداشتم بلکه او خودش به گمراهی زیادی به سر می برد خداوند میگوید در حضور من با هم مشاجرن نکنید من پیش از این شما را وعید یعنی وعده عذاب داده بودم چیزی که گفته شده در نزد من تغییر نمی و من بر بندگان خود هرگز ستنگار نیستم روزی که به دوزخ می گویم آیا کاملا پر شده به جواب می گوید آیا چیزی زیاد بر این هست؟ بهشت برای پرهیزگاران آورده می شود به فاصله نه چندان دوری آنگاه گفته می شود این است آنچه با شما وعده می شد به هر خداجویی جوی داری کسی که از خدای رحمان نادیده می ترسد و در این میدان با دل خداجو آمده است و ایشان گفته می شود به سلامتی به بهشت درایید این است روز جاودانی در آنجا آنچه بخواهند برایشان حاضر است و نزد ما افزون بر آن نیز هست پیش از ایشان چی تعداد از نسلهایی را که از ایشان در قوت خود شدیتر بودند حلاک کردید آره ایشان با شهرها در جستجوی پناهگاه برآمدند، مگر آیا گریزگاهی بود؟ بیگمان در این پند است برای کسی که صاحب دل باشد یا گوش فرا و متوجه باشد بیگمان آسمان و زمین و همه چیزهایی را که در میان آنهاست در شش روز آفریدیم و برای ما هرگز خستگی دست نداد پس بر آنچه گویند صبر کن و پروردگارت را پیش از آفتاب برآمد و پیش از غروب به پاکی یاد کن و نیز در بخش از شب او را به بپاکیات کن و بعد از سجده نیز به آواز آواز گوش فرادی روزی که از جای نزدیک صدای خیش را بلند می کند. روزی که به حق آن آواز را می شنود آن روزی رستاخیز است بگمون ما زنده می و می می و به سوی ماست بازگشت روزی که زمین از کالبوتهای ایشان شگافته شده و شتابان از آن برایند. این حشر بر ما آسان است ما را آنها می گویند، بهتر می دانیم تو ایشان را به اجبار به عقیده اسلام وادار نمی کنی از این روز صرف همان کسان را به قرآن پن بده که از وعید عذاب می ترسند